ده به شما بود در شد باز اجمال که به ذهن ما میاد که در قلیت افقی اسلامی در همون اهد صحابه از زمان زمانی به اصطلاح شروع شد و همچنین قیاس قیاس هم در حقیقت اون زمان در قرم اول بوره میگفتن در برن دوبون قیاس قیاس و رعیش بعد ما همگاهی به قیاس و رعیش شهاد ما روشن از اجتماع قیاس و رایش. که سابقا توضیحا در جوید شد از قیاس و یا رعی با تا من دوز بود و اجماع در این زمان مخصوصت بردست توحاتی که برای دنیای اصلاح شد مطرح شد و اصلش همین بود که اینها با موضوعات جدیدی رو گروه بودند یا موضوعات های قدیم بود به اعتواد صحابه در اونها حکم نبود نه در کتاب حکم بود و نه در سنت لذا این دیرونهای کل اینها یعنی استثاب و قیاس و رعی و اجماع زیر بنش این بود حالا بعضی از نتیجه میداد قیاس و بعد از مثلا از هم که از همونی نفتاست تو ما که در حالت در حالت ما همون بازی شده اگر هم دارد طبیعه باشد کمی رو در زمان اون دومی بحثی که به حد خبر حضر فرمان هستیم که شون اینده می کمتن حضر نداره تطریق داره بگوزنی شید که از وجودی در برانه آن بوده شده خم نهدیتر است در حد حض حد حض تا. تازیار لذا قیاساً یا رعیاً حد خم رو همون تا تازیارن این مثال برای مسئله به صلاح پیاس برای اجماح هم اون مسئله که مطرح شد بعد از سرکه ها که این زمین ها را چیکار کار بکنیم،, بکنیم از سحابه می گفتن به رنزمنده ها تخصیل بکنیم برای بلیه هرانه چون زمین از زمین زیار بزرگی بود و تمام سرسر خاسفی اینقدر سرسرکو که از سواس سیاهی می داد از جور چیزی بشد یک قطعه بزرگی زمین سیاهی می و ور از کردن که حرابه در اون زمان از حدود بسره شروع میشه بونهی میشه حدود شمال بغداد نه این حراب فیدری اون قسمت بالا رو از پچویز و حساب بالا اصطلاح هم در اون زمان جدیری میگوزن جدیری نسبت به این مکنه دردو و فرام تردارم اصلاحات دردو و فرام درکه اصلاح حدود بالای بغداد از اون قسمت برد بالا دردو و فرام بود بخی مادرین ما رو جزیره می کن. از اول حد جهدیره هم تکریت بود برکرسنی برسر خبیزان این تکریت اول جزیره بود خود صلاح دین ایوبی معروف های اشیده باشیم اون همه همه تکریته خودشمال این منطقه است این منطقه رو به نمی بودن. در اصلاح اون زمان جزء احراب نبود در جهراتیه بودن هست کس چیز این و که بودن این مقدار بود که به تنظیم اصناد وقتا مالیاتی چون نرمایی کسی که این کار رو کرد که تنظیم سناد مالیاتی کرد بازم همون بود دستور دو که تنیمی بکنم و از بخصه اون حد تکلیک تا شماره بردادم بردادم برداد نبود برداد تا بروز شماره برداد و از بروز در این روزه قرمان تا مالی سماه این مقدار رو طولا بردن وقت تنظیم سند مالیاتی کردن مناطقی که مرتفع بزر مناطقی که پس بود خارج شدن از حساب مالیاتی زمینی که ساله بود و کشابتی این رو تنظیم سند کردن سیوی شیشی به میون جلیب شد این رو تو مخاطر محرمم مرموش عراضه خراب جبکه داده نم. این مال ماها نیست این مال محل سنته و از عمر این کار شد تنظیم مثل سی شیش می می رو از, از, از رو سیشیش بدون جلیم که دست افراد بارگذار میشد که ایان مالیات معین رو بپردازند این بردازنی یعنی به از درماز زمین رو و ها و اجه ها یعنی یک دهم یا به یک داری پنج یک از یا دو دهم یعنی ده درسن یا که ایش آزار بعد در این مناسباتی عرض میکنه میشه. خب این محل سلام شد بعد از این که مشورت با این عمر با افراد نتیجه بینید شد که زمین عراق رو تقسیم نکنن همچنون نگه بودن در بیت المان هرچی در زمین بود داده بشه مثال برای اشما مثال برای استثاثاب هم, هم مثال معروف که اگر زن احتفال درم شد اما از چون از قصد در چون نیامده. اینجا هم استثاغ و حرمت میکرد من هست هم در احکامی که یعنی ادعال این بود که در روایات و آیات مقالد که این احکام من سه مثال دادن که براتون روشن بشه اینا یا مراجعه به قیاس میکردن یا مراجعه به میکردن یا مراجعه به استثاغ در شماعه کنی کنی اینا هم خوب زیر دادن زیر بنای تمام اینها یک چند بود اون زیر بنای اصلیش اون دیدان ایفتیش این که ما در این موارد بکنید در که سنت نداره لذا این سه مسئله اصولا در بین از ما به استفتاد بخاطه ایگه بعد حالتی قائل برو شدن بعدا اصولی ها معرفشون قائل برو شدن که باید ضربه باش باید یا فیره کردن اما اون دو مسئله اتفاقی از ما شد از طریق اطلبه اون دو مسئله باطله هم اجماع بیم منا باطله بسلانش هم بسلان ریشهیه یعنی اون زیر بنا باطله اصلا اون زیر بنا که ما موارد داشته باشیم احکام نداشته باشیم و در کتاب ها در این وجود نداره این باطله این زیر بنا باطله بداه ارس کرده این مثل ها که بیشم ابن هزمه اونم میگه اجماع باطل خیاس باطله تمام این باطله چون میگه که ما میشه ایلا کتاب رو سنن. پس اون هم زیر بناد آموزش کنه خودکار کردگانی. پس اصل اجتماع در تفکرات اسلامی زیر بنادش نبود نهسه. این اصلشه. اون ریشه اصلیش. و دزدشون در واقع اگر بیاید هم داره مامی شین ایلار جراحی یک کارم. او سنه. خود این زیر بنا باشه. او می‌گه خود این زیر بناد. بنا. و که من توضیح دادم چون تو مقام می‌آمد. یعنی در میان به قرار سندن که اجیما به عنوان مصدر پشتی مثل کتاب و جا افتاد یا قیاز تو مقام عمد به خاطر قداست دیگه یا پیدا شد از این داره یه مهدوز اولی خارج شد این یعنی که اولش یک چیز بود برچی تو دیگری شد اون جایی که خارج شد بود که مثلا با اجماع تقسیص کتاب بزنیم تخسیص اطلاقات سنت رو بزنیم دیه بحسش منحسر نشد به اون جایی یعنی که در کتاب و سنت نیست دیه ار کردم در بحس ثابت یعن عرض اجمالی طول میکشه ار اون فرو اهل سنت تو اجمار ببینیم انا در کل مطالبی ست که بعدها پیدا شده اصل نکتهش نه خب طبیعتا این اجماع به این معنا ت شیعه نیست اینجای بحث ندار اینجایی بله از کلی در میان روایات در بعد از حبور فردی ما اجماع داریم شروعات ما وارد شده باید خیلی کمه فقط ما ده از آف باید و این کلی همه پنشتا باید تو باشید خیلی نستاهش کمه هر از حبور وارد ما موجوده ما نستاهش خیلی کمه نمیتونیم الان نظر درستی اجماع در میان میانشیه از سالهای 30 به بعد آمدن آمدن آمدن آمدن به سی در آمدن آمده اولین که در میان نمی شایستی اجماع آمده در بغداد که خودش نمیشه در اون شهر بیشتر بخلاف با در خاصات آن در اسرعین اجماعی که در بغداد آمد که توزیعش در سال 45 این مجموعه بود یک نه باطن نه اولا مراد در ما اجتماع زنجام اجتماع نبود بیشتر جنبه ترقی بود تلقیه و قبول بود یه رو اجتماعی به مواردی بود که الان ما نفس نداریم هستر ظاهر بود اما ورن اجتماع سنجام بگیرد یه ما به مردادی که نفسی موجود بوده به ما نردشیده توصیحاتش بذاشد یه مرداد به مواردی که تعارض نفس بود حالا این مثلا از در تعارضی شهرت یا اشمار خصوصی پیدا شد که موضوع در برنامه و جهات دیگری و موارد نادری نه نادر کم بود که در فقه تقریبی محافظت باشه. چون عسكران با وای قم دنبال فقه تقریبی نبودند. دنبال فقه منسوس بودن یا ورشات تقریا بودند. اصطلاح به تفضیق باید بیشتر فرزی هم میگن باید بیشتر تخمیری هم میگن تقریری هم, تر... هم میگن اصطلاحاتش مختلفه این رمزش اینطور روزو پانه که در روایت نباشه این اصطلاح هم به تفضیقی بود این تا سال چار ساله پنجا از ساله و ساله پنجا به تا حوضه ساله باز اجماع در میان علمان ما هست بیشتر یک کسانی که آیل بوجه خبر دارن. توی همین منطبه اول بردادن دوم بردادن اجماع بیشتر به درده این که که به بوجه خبر نبودن یعنی دو اتجاه رسمی در شیعه دور شد اون آیل بوجه خبر بودن اجماع رو قبول نداشتن برداد به حقس نه همه نه همین بردادی ها اجماع رو قبول داشتن خبر واقع نداشتن این تا سالهای چهارتاد و بعد از این هم همین رشته ادامه که که من توضیحاتش شده شده ما همه علامه علامه رسما دو تا بحث معروف رو وارد فقه شیعه کرد یکی ارزیابی خبر تا اون وقت نبود از تا جاییشان محروف محقق در معتبر این راه رو نمیره یا در شرایط اما علامه دیگه رسمند وارد کرد وارد شیعه رو مثلا خبر صحیح بنا شده خود بشه به نظریتون یکی تقسیم خبر اصلا تقسیم خبر در میان نهر سنده از قرن سومه. در میان ما از قرن هشتمه. خیلی مهمی تباید دو سال داری اونه از قرن سوم شروع کردن به تقسیم خبر صحیح و حسن و ازدار کردیم این خیال نکنید م... یاد صحیح پیش همهشون یکیه پیش خودشون رو می‌کنه. اما در شیعه اصطلاح نبود علامه این اصطلاح را بود. تقریبا هر کسی بعد از علامه تحریف سعیه یکی کسی باه پس تعریف سعیف و تحریف حسن که شهر سنت فرمی یه حدیثی رو مسلم سعیف می بخاری نمیدونه با حاکتا دیگه این دو تا که مشبور هم غیر هم زیاد دارن مثل ابن حبان و دیگران که مثلا حاکم سعیف می‌دونه. اصلا بعض از مواردی رو که حاکم بوده سلیمان زهرین که اینا دارم تنده خیلی دویشان حمله میکنه ای ای این نمیبینه میگه این لا تا ایلا زنان چه این مناغل همین رو میگه نه این در که تو راه ها صحابت در شعر مخوند این مدداری هستی این ها کلمات این رو در راه ها گرفته در کتاب خودش وارد کرده بنات از از آله احلیده حالا حاله بعضی‌ها رو ذهبی رو خیلی جاش قوی میکنه خیلی جایش تا تون باشن صحبت میکنه خیلی نقاهت هم می کنه به حاکم خب حاکم اشکال معروف داره که احتمالاً مثلا میگن تشویق داشته باشه یا یه نوع تفاهم در تضییق داشته باشه حالا من وارد اون بحث نمی‌خوام بشم فقط می‌خوام این نکته رو دقیق بکنید صحیح بین ابن از در قرن دوم شروع شد از قرن اول از سال‌های تقریبا بحث سندی شروع شد ارزیابی ها شروع شد شروع شد به بحث طبعا از سالا پنجزی سال دیویس اخذارت دارن کم زیاد میشه از سال دیویس دیگه تقریبا شروع میشه این تقسیم بندی خود صحیح بخاری میاد کن مهمه در کتاب سید بخاریشون در تمام دوائل معرفتی که در حدیث وارده صحیح اون باب رو به کرده در جامعه از به این معنی این که صحیح بخواهی جامعه فتار و ما جامعه نیست جامعه صحیح که اسمش بزاره یعنی از طبیل و نبوت و عدل و تاریخ و تفسیر رو نمیدونم فقه و اصول و شعر و عدب و طب با ملاهم و فتن و فضاله در کلیه اعباب در کلیه اعبابی که ما روایت داریم ایشون روایت صحیح اون باب روزا شده بود که چهار از باب با منکرار که تو دارد دارد. ما الان کافی ما یه رو می سرد مثلا کافی رو با بخاری تشویی کنم این نقاط اختلاف رو هم در ذهن آیان باشه صحیح اونها یک نقاط نیست حسن اونها یک تعریف واضح ندارن اما پیش ما هم صحیح هم حسن تعریفش یکی عوض نشد چون تو قرمه هشتم علامه بره بار گفت بعدی ما به احترام علامه رفتن جلو که عوضش نکردن؟ بله الله مثلا چهار قسم کرد هم از زمان سببیه مثل منجسی ها این زمان منجسی از دیه قربی هم اضافه کردن پنج شش کردن از دیه هم برسی این که قربی جزو خودو جزو مثلا حسن جزو این خبروزی بخیم از این تقسیم بندی از دا دا. این بندی رو از این برسیم بازم مانو سنیا که من از از این رو بشیه به در دو قسم حرب رو مورد اتنا قرار داد یکی صحیح و تعریفش هم یک نواه شد صحیح است که جمعی اروباتش امامی عدل موثل باشن توصیح این اصطلاحای صحیح علا حسن هم جمعی اروبات لاعقل امایات ازدهشون صده باشن ازدهشون دا ولی یکیشون هم امامی باشه اما توصیح نشده باشه این هم گفت اصلا امامی باشه، مندوه هم باشه مردی در شرمش نازل شده البته این که حالا مرد چیه این بعضها تو بخصه حدیثی شیعه مطرح شد مرد چیه مثلا گفته این که نزیشی بوده لبو کتاب اینو مده. این امامی مرد تو اینجا از این کشه چه مردی کتاب مردی سازه بیشه این کجاش مرده مثلا یه بعضی بعضها در تشکیس صحرایات محرم شد یه خصوصیاتی مثلا مشهور بین علما می گفتن مثال خویم از از همین که راویش توصیق شده باشه رو از طرف یک نفر این کافیه باز مرحوم ساب مداره می نه باز توصیق از طرف دو نفر شده باشه یک توصیف کافی نیست این هم باز موثل به حدل این باشه حالا باز در مقام تصویر، چیجور مثلا اینجا مواثر به اینه حساب میکرده هست میگم یه مقضای مسائل خیلی تنگیه علمی نشده مثلا خیلی جا, جا علامه کسی رو توصیح کرده این عباد نجاشی رو بوده مرموم مراره که میشون مواثر به حدل اینه و سلام اون نجاشی و علامه در که آدم هستی کتاب علامه نگاه میکنه وقتی که خیلی جا عبادت شیخ توصیح و علامه و نجاشیه این عبادت اونان خب دیگر این رو دو تا تو توصیح حساب میکردم من نمی خواهد بحثایی حدیث روی مطرح بکنم می گوسم هر که علامه و نجاشی او توصیح کردیم این او اثرا به میشه رسی دیگه خبشان را تا را. الان هر کسی نگاه بکنه باشی واضحه که علامه از نجاشی گرسن او توصیح واحده این دوتا نیست یکی همون نجاشی علامه هم کلام نجاشی بود یکی با ک علای الهادر مضافن به اشکالی که بنده ها ساقوی مظرع کردند که علامه چه حرفی دارد توصیف بقول چون بقول زبانی داره توصیف باشه حقیقی میشه اسافتت او اجازه میشه الی آخر اون شبات نمیخوام بیار وارد کل بحث بشم فقط خاصم بیام اصول مطلب یکی ورود یه مقدار روی خصوصیات و روی مصادیق و روی قیود قید قیودی به این اذهار ما پیدا شد اجمال بحث در این استون دوام عرض کرده که ما با تطبع در کلماته علامه دیدیم ایش صحیح رو حجت مطلب میدونه حسن رو حجت میدونه انده ادم این مبناه ایشان از داکه دا این مبناه که ما دو دور حجیت داریم یه حجت مطلب یه حجت مطلب الان تو حجت ها نشینیم تو حجت ها توی این درستی آقای این مطلب رو معتقد نیست که دو مرحله باشه یا حجت هسته نیست دیگه و لذا مرمون استاد هم این اواخل مخصوصا اگر کتارهایی که آخه نشت شدیده باشی ما که درسیشون میرسیم این اواخل گفت میگوشن سریعه محصوله حسنه اما این استقاها مشهور بود به این وفاقا بلایی خان بود که خبر یا واجد شرارت حجیه هست معتبره یا نیست معتبر نیست این باقا حسن باشه صحیح بسیده نمیشی بود اونم که تقیی شد شرایط نداشد حالا صاحب جواهد یه حدیثی رو سریع این مثلا فلانی در شخص توصیع نشده و این معتبر نیست ایشون نواقع قاربا تبدیل به معتبره و دیگه معتبره این کرده ما اینو این نتیجه نهایی از اون تقسیم ربایی یا خماسی تقسیم ربایی پرسط حلانه شد تقسیم خماسی توسط متاخری در زمان صفبیه شد اون پنجمی میشن که بهش اضافه قوی بحث بحثم کردن که ما قسم پنجم آیا ما قسم پنجمی به نام قدید داریم یا نداریم این کل اجمال برد حدیث پیش ما شبیه هم همه علامه تو اجماع او. علامه تو بحث خبر این تصدیر رو با. شبیه این هم تو اجماع او. وقتی اجماعی که علامه داره اگر اتفاقه کل باشه تعبیر به اجماع کرده اگر مشهور باشه به شهرت کرده این سالس که شاید فرسایشون در دیگه. و مرادی از این و از شغرت توضیح بدیم یه ادهی از فروع فقهیست که منحون شیخ توسی در محسوس مطرح کرده خب دقت قطع کنید فروعی رو که شیخ در محسوس رو در روایات نیامده در پشه قوم هم نیامده فروی تفریعاتیست که یه آمده برای اولین این بارم شیخ ورده بعد شیخ بگیم فرو به نظر احترام دیده شد قبول شد هنگامه گاهی از اینها تعبیر به اجتماع میکنه گاهی تبدیر به شورتی باید این خوبی کار اینه که تقریبا هشتار درصد از مواردی که علمای بغدار و بعضیها ها به اجماعی و شهرت میکنن ما میتوانیم الان میشیابی بکنیم. نشیدیم ها مثلا این مسئله به شیخ در محسوب رو ده بعد شیخ ابنیدی رو کنان رو قبول کردن علامه ادعای اشماع کرد دای ادعای شعرت وقت در اجماع شد که حجت از مطلقا مستفره سنید ممناش در شعرت چی شد حجت از دلار معارض داره تو مختلف داره لنا انه مشهور ولا هم و لا معارض چی و انه ها روش چون این توضیح نداره شده توضیحی ندیدن در کلمات از ها پس در حقیقت در زمان علامه این کار جدید در فقه شروع شد که اینم نبود، این نبود، قبلا نبود این شهره که اون چی خبر یا محارض خبر یا محارض دیگه خبر انگاهی میگه میگم چون این تفریعاتی کشون مشهور با فقه تفریعی درست خبر نداره اصلا فقه تطریعی براتون روشن شد تولدش در بغداد تو قومان نمیده از سالهای شهر ساد و بیست تو برداد تولداد بده کرده یعنی ما تولداد داره تایه تولد داره, تا داره. روشنی این فقه تطریعی اولین بار این عبارت که یعنی داره واضحه ما در همون مخصوص شیخه فروعیست شیخ تطریعات نیست که شیخ در مخصوص کرده. بعدشه قبول کردن ایشون تردیل بکنه باید از ما به اجمار باید شهرت مشروع وقتی اجماع رو هجت میدونه و همون کاشفیت نه مثل ادسان من هم حجت همه هجت میدونه. البته عبارتش در هجت شهرت خیلی واضح نیست چرا بعضها اصحاب ما تمثل کردن به محبوله عمر همه هم زده خود به ما بین اصحاب و در اشاره و نادر فان المجمع بنابر اینکه بر حسب کلمه هر چی که شهرت داره فصحا باشه یا غیر فصحا ذو حدیث یا خبر در فصحا نیست ببین اطلاق داره حدیث ولو فصحا باشه عمده تمثلی که بعدها کردن اینه الان خود زهره بن هشام و تعلهم به چی تمثل کردن میگم فان المجمع علیه این شد. که این شامل خبر و غیر خبره نیشانا تعالی برای آین روشن شد تا حدی پس از زمان شارصد و تا هفت یک یک مقدار زیادی از <تصفح> سخت تفریبی به این اصحاب قبول شد این تازه بود تو که فشیه این شکلی تازه بود اون تازه تازهش این بود چرا میگم تازه تازه چینا بود؟ چینا شهر توسی اردو مثلا در بود کتاب نهای شهر توسی فتابایی هست که روایت ندارد شیخ مفید فتاوا داشت شیخ لكن از شیخ فقه‌تطبیقی شیخ مفید فتاوان درسته بعد از همین که شیخ مفید و شیخ طوسی فتوا دادن فتوا بوده اجماع نبوده بعد از شیخ طوسی هم فتاوا الان به ادای اجماع میاد نسبتاً میگه به اون نجس اصلا ما به اون نجس نغوات هم ندارید کلمات قمیاب نداری چون قمیا خیلی مقید بوده همون که چون لایه بودو بیان لکن در موقعه شیخ سوسی... سلوم همه محیده همه در کتب شیخ سوسی... سلوم همه دقیقه خیلی واضحه این سباته نگاه میکنه کاملا تک تک مسائل روشنه در موقعه آمده در نهای شیخ سلوم همه این بعد از این دو بزرگوار همجرون این فتوا دادن علامه آمان گفت اجماع هم لایه بودو بیان اجیس اجماع هم. پس این فتوا بوده قبول شده تدریجا به 20 سال 300 سال گذشته الله امدای شما بده نيشه شما نه وايه گهيم اما ي شما اجماعن توافقوا شيعه نه چون قومياتا ندشيد مسئله تو تعامل برموديد قوميات در باره در بود و اميه بود همين در باره همون اما لاریز به اون نجاست فرکنه نمي خصوصا که در اون قرنهاي 4 و 3 به این سنت این فتواه آمد در ایزو به اون نجس استنازا به قیاس یعنی احل سنت تسریه کردن به ازوز و از نجس ها در رواز آمده بقیه هم قیاس هست خوبه همی ها این خوبه ها آمد که اگه گفتیم لایزو به اون نجس اینه قیاس اینه داروشن شد برسیم جبعه ایمی این شد که لایزو به اون نجس اینه قیاس حاصل درست نیستیم مطلب و لذا قومی آموده بودن همونی که در رواید آماده همون ما اختفار بودنید این دولایی زبیر نجیز که شما دن هم به اما در فرقای مغزادی ها هست مثلا کردم ما دلا حاضر باید این مطلب رو چی کتاب فکرده چیز چیت داریم کتاب به اصطلاح تحفیل و داریم که در قصفات ما نبوده اون حدیث معروف به و قبول در احتمالی مرموم شیخ موبید از اونجا گرفسه قطعا شیخ موبید هم از خیاس نگرفته. این قطعیس پیش ما حالا قومی هم حدیث پیدانه کرد بحث دیگه ولی ما قطعیم دیمی که قم بردادی قطعا از خیاس نگرفسن من مثال بودن که خیلی ملموس باشه واضح این فتوا آمد علامه چی گفت اجماع؟ لاعزی برای در اجماعه, اجماعه. بگرد ما وقتی برمیگردیم به فکر خودمون در این دینترین محنی که داریم بگننید مقنه شیخ مفیده سال چارسد خب این تصویر بکنیم مقرد با خب در سال چارسد مثلا معاصرت ما... ما... با شیخ اصاد سادش... شیخ مفید اینکرام ندار اون نکتهی ندار وقت چطور علامه ازایی اجماع کردیم بعد از شیخ توسی و شیخ مفید قال شیخان وقتی این دو بزرگوار فرمیدن اصحاب ما هم قبول کردن این فتوا قبول شد لایی تو بگم نجیس زمان علام و شرفی تنسی که 300 سر از این بودشتی بود بیه اسم نشبه اجماع، درست هم, هم یعنی از وقتی اینه که اینی که و قناعه هم داره یعنی از وقتی که در فخت ما مطرح شد اجماع. در فخت خون مطرح نشد اصلا مثلا میگن یکیوزو بیان نجیس الا پراه این به اون نجس لایجوز مطرح نشد اجما این معنیه از وقتی که به اون نجس مطرح شد لایجوز باشه این که ساقنا میگه گاری مرادشون از اجبال هر کسی متحرز مسئله شده نه جمعی اقوی این درسته بسید تحلیل نسید شده مشکل کتاب کشوردنا تحلیل تاریخی نداره اون روابط تاریخیش رو پیدا نکرده پس بنابراین یک فتاوایی بود که بین اصحاب بود و اینا هم نبود در اول یواشه هاش این فتاوایی قبول شد علامه دارش موکن طبعا قبل از علامه هم در ادهش ابن ادریس دارش موکن ابن زوره دارش موکن دو ادهه از مسائل که کاملا واضح نفقه تفریقی دلیلش در هیچ چطور جز مقصود شیخ هم نمازه. این دلیل واضحه اینا بعد از مردم شیفت این تفرید موضوع قبول قرار گرفت. و از این ما نداره که خوردن تگرب جزو مفتراته خب نداریم ما این مطلب رو تگرب به وقت برد به تدیر ارمه بود لیکن خب فتواه اصحاب میشد نستازه شد به سر موضوع که نه این خارجه اما اصحاب این فتواهاشو مستند به همون افلو شد بود به همون افلو شد به عباس دیگر. اطل برای فوق این نیست که ما یک چیزی تو درمان برداریم برد به جویم برد بردیم برد همین که از راه زمان گرفه میده برسته اطلیم همین که از راه دارم <تصلاح> این آمدن اتداری اجماع کردن بایی که این کلمه این درد اصلا طورات ما بارد نشده کلن بارد نشد فتوه آمد فتوه حساب القائزه بود درست بود تفریح بود حساب القائزه بود چه بجایی این قائزن بله، شیخ سعدو معتبر نشده. خب باز به دکارت باز همون همون مشکی. شیخ سعدو نداره بین نه اکلال براد مثلا حس داره. چرا؟ چون شیخ سعدو مغایر داره باز. تو روز بعد نداری. دکارت. تو, تو روز بعد آن وان تجاری نداری. یا بران. دکارت هم. چون نداریم شیخ سعدو نه. نزار ایدی بک گراوند کردن گفت این چه جوری اجمای شیعه صدق نیست این شو ببینید که خاص بخود برد این ریشهش این بود که بغدادی ها گفتن اخا عقل یعنی چیزی از راه جهان به نتیجه برسه خاص مرکول نباشه این چه چیه یعنی بوشره علی مثلا یک چیز میگن گفتن نگین حقیه میگه این چه چیز سنگ حقیه بخوریم خب اینجوریه نه ریتجوریه بعد برات رو نمیگم لکه این اصحاب ما روی قاعده پسوا دادن به اینکه این افتار میکنه بعد از بغداد هم آمد آمد به زمان علامه شد دایه اجماع <تصفيق> دایه اینطوری درست شد و در حقیقت این مطلب درسته ما هم شهرم میگیم هم میگیم اما وقتی شما میگیم نه آقا این اجماع بازه همی شایشون صدوق نزده راست صدوق هم نزده صدوق چرا نگاره رو رو بازه که تحلیل یعنی الان ما خیلی راحت نیستیم تقریبا اینا تو بعض این راحت حالت میبینیم خیلی راحت و راحت سال 8 درصد موارد دعوای اجماع رو, رو این حساب تحلیل بکنیم این واجیه به این زمان یعنی قسمت مهمی که توش دعوای اجماع شد مسئله قسمت های تفریعی بود فتاوای شریعی بود مواردی که خود سردموزا توش ادعای اجماع کرده و قبول کرده بودن که ادای اجماع کردن و معارض قوی ندارد. اینها یواشاش مواردی یعنی ترقی و قبول شده بود برخشی در خلاف ظاهر جمع شده بود اینها یواشاش موارد اجماعی شدن که در کلمات آمده است البته اتفاق کلی این بود برای مثل ابن جبری سو ابن زهره اجماع در مقابل خبر بود برای مثل علامه اجماع با خبر دو تا بود خبر علی نو کاشف از سنت بود اجماع علی نو کاشف طریق به سنت هر دوشون تایید بر سنت بود. این تا زمان علامه که انصافا اینو باید قبول بکنیم علامه وجودی ایشون گذار بود خیلی تأثیر شاده می که از عواملش این بود تربوع تالیفی علامه شده مثل شیعه تونسی فدا علامه در رجال داره در جهت تفریعی در جهت اهل سنت داره تاثیر داره در جهت شیعه چند جود داره اصلا من هر کردم چند بار عرض کردم که اگر راست باشه که این چن داره اگر من شبهه دارم در راست بودنش یعنی ظاهر اباضه پسر ایشان تحقق معقبه اینه میگه فتاوای پدرم در کتب مختلف به خاطر مبانی مختلفه خیلی عجیب این مطلب رو راست خواجه چون پسر ایشان در حال ایشان نه مثلا قواعدی که علامه داره سعی کرد یک دور فقه رو, رو قواعد بنویسه اما در منتهها سعی کرد یک دور فقه رو روی رو روایات بنویسه ببین های کلی از دیگه باشه ببین اگر راست باشه انتا کامل نیست. اگر راست باشه مختلفه میشه. اگر راست باشه که علامه در کتب متعددش از زوایای متعددی نشه. خیلی قدرت علمی می‌خواد که انسان یک دوره فقه دو ای بعد یک دوره فقه منصوص و نتایجش با هم فرق بکنه. این مسئله رو در اول شهر مقدمه قواعد به سر ایشون اگه اوماله باشه خیلی عجیبه ظاهر اون عبارت اینه شری به نام ایضاح قواعد، ایضاح شرح قواعد نیست، شرح مشکلاته دادن، کل قواعد نیست. اشتباه نشه. وقتی یک کتابچه دیگه داره به نام یعنی جزوه‌ای مستقل شرح خطبه قواعد. در این چاپ ایضاح با این چاپ شده، شد. زحمت دو تا کتابه. یکی شرح خطبه قواعد، یکی شرح مشکلات قواعد. در اون شرح خطبه قواعد ایشون میگه پسره میگه اونجا آمده. که این اختلاف عقوال پدر من در کتبش ناشی از دیدگاه های مختلفه زبایه های مختلفه اگر اگر راست باشیم من اگر من بسته میده باشن اگر عبارت کودی باشیم که من میفهمم و اگر آزادهیشون مجامله و تارمه قرموده باشن خیلی عقلقه به هر حال مخصدان چون علامه یک کتاب ترکله هم که در فهمه مقارنه شبیه همون حالت و قداستی که برای شیخ در میانای قرن پنجم پیدا شد هبائل قرن هشتم برای علامه پیدا شد و این دیگه قطعی که از زمان علامه تا این لحظهی که من در خدمتان هستم مبارس حدیثی و رجالی و تقییم حدیث هرچی آمده عین علامه آمده فقط چیزی که هست مثلا آقای که میگه ما محسن قبول داریم با سریع حسن قبول نداریم ایشون اون حجت لولت ما قبول ندارم یا حجت هست یا نیست یا این لولایی ندارم حجت لولایی ندارم مبانی رو بگم به استثناء این که درون به استثناء. مرحوم صاحب مدارک فقط صحیح قبول میکنه. باز صاحب معالف صحیح و حسن باز حسن رو هم این دو جور میدونه میگه یه واضع بین مشروع صحیح است پیش من نیست پیش مشروع حسن است. این منتقل جمعان ایشان هیچ بسیار کتاب ناقصه منتقل جمعان فلعهادی ست ها و حسان مال معلوم سابهد و ساید ماله ماله بسیار کتاب ناقصه فوق الهاده ناقصه اگه ایشون تا عوال هج رسیدن کتاب رو کامل میکردن، خیلی برای ما الان فرمون خیلی یکی این جهدش یکی که ای کاش احتفال به و حسان نمیکردن کردن و موسق و اینا رو می آوردن به زید هم ناقصه هم به لازه این کتاب حج داره هم به در هر با فقط صحیح و حسن رو آورده موسقات و ضعف رو و اون نقلی بسیار مهم که قریمتی بود یعنی برای واقعا علمای ما ایشون نسخه تحضیب شیخ رو به خط خود شیخ داشت نقل بیم کنن این نقلیشون از نسخه تحضیب شیخ به خط شیخ یه نعمت واقعا بزرگیه که متاسفانه ایشون هم محفظ نشد تا بعد از کتاب حجت اون میگذارم که نعم کرده ناقصه متاسفانه بله اگر اگر کسی گرمه ما نداره که از تحضیب خط شیخ نعم کرده باشه جز مرمون صاحب ماله قدسال لاحنم صاحب زکیه اگر بود خیلی الان تو تحضیب تحضیب یه جایش خیلی بر جوری نسخه شده بازه یک نعمت بسیار بزرگ وجود این کتاب تهذیب شیخ بود البته حساب این اینطوریه میگه این حدیث اندل مشهور صحیح اما من قبول ندارم یا من صحیح می‌ذارم مشهور نمیم. لذا ایشون رمز مثلا همون بحث صحیح و حسن علامه با یک اختلافی رمزه رمزش اینطوریه سحر صاد و ها و را سحر این صحیح اندل مشهور بعضی میشه صحیح یعنی صحیح اندل صحیح اندیر میتونی صحیح ساده ها و های حبتی و یه اصطلاح ایشان یعنی ایشان مخالفت هایی داره و انصافاً هم یکی از کسانیست که اگر این راه ایشان در حدیث دنبال میشد خیلی فکر شیعه بگرم متاسفان این راه ایشان تیدیری نشد این از زمان تا سالهای حفصد که اجمالش براتون عرض شد. از سال حفصد به بعد که تا حدود سالهای زمان سفر میشه، یواش یواش مخصوصا زمان صفویه اصلا تا اون زمان اجماعات علما مثل شهید اول مثل شهید ثانی خیلی به نظر احترام نگاه میکنن همینش رو به سال 700 که از این تا اون سال هزار که اوایل صفویه است صفویه از 130 تا 133 تا 1335 گرفتن اصفهان تا برس سال بعد که نادر بیا که 1130 شد علایه در این فتره یه مقدار زیادی همون دعاوی اجموع علامه کارگزار شد بلکه بالاتر تصیحات علامه کارگزار شد من توضیحم چند بار عرض کردم الان یه مقدارش شد عرض کردم الان عرض کردم این تقسیم صحیح در میان اهل سالت از قرم دوم شد پیشمون از قرم هشتون شد و احجب از اون حق در مقام تصفیح هم همینطور شد یعنی این نقطه رو خود در نظر بگیریم ما اولین باری که در میان فوقهای ما و ما علمای ما چه در فرح چه ارحاظی که راجع به حدیثه بیان بگن این حدیث صحیحه این حسنه این موثره این اولین بار علامه انجام داد. میان دایی نشون معقد این کار نکرده. نگرده علامه اولین کسی است که اضافه بر بحث کبروی این تخصیل رو تو فقه پیاده کرد ما قبل از علاقه نداری علاقه‌ستون مختلف غیر از صدوق صحیح رواش شیخ صدری رواش شیخ به ضعیف و جواب به من ذع به منع صحت سند فان به فلان و او این کار برای اولین بار در شیعه از زمان علامه شروع شد اما در سومی ها از همون قرن دوم شروع شده ما خیلی در این جهت با احتلاق زمانی داریم اما از زمان هنده که شروع شد این آمد گرفت منفی نشد بعد در وقتای رجالی ما رسائل داریم که پرسید مثلا تا پنجه سال قبل هشتاس سال قبل نوشته شده اونا هم هسته اونجا هم تأثیر بودشه. مثلا فلانی سه قسم در عمل علامه و سهر طریق صدو و سهر طریق صدو و بیرمین شد بسیشون پیش علامه سهر یعنی تو این کتاب های ما هم دعاوی علامه هم که ماشاءالله در کتاب های بعدی در علامه علیه اجمافل تحریر علیه اجمافل نهایه مثلا علیه اجمافل نهایه که منطقه علیه اجمافل و علامه جبه هم قبائد در ولی اجمافل این مطلبی رو فرمود. تا حدود سالهای هزار این صافن در تنه شیعه و در حدیث شیعه و در رجال شیعه جا افتاد شدیدترین حمله رو در این زمان ابن مرحوم الله محمد عدیم استعبادی و یکی از نقاط خیلی مهم کلبه تیز حمله اخباری قرار گرفت یکی اعتماد علامه رو اجماع بود نمو بودن اجماع رو نداره یکی هم رو خبر بود میگفتن نه این تقسیم علامه درست نیست ما روایات بسیار زیاد که که حجت ولو صحیح نیست یا حسن نیست یا معاسبت نیست یکی از لبه های تیز فوقت عادتی در ها این کار بود این تا حدود سال هزایشون هزار و سی و سه و الله محمد تا وضع شیعه رو تا هزارم هم از اون هم تا زمان مثل سال جواهر ها، و زمان ما که بینیم وضعی که ما داشتیم شیم. به هر حال ما برگردیم به اون تقسیمی رو که بنده احس کردن. این که موارد اجماع. اگر مراد تفقیه از محسوم باشه برد نیست میشه قبولی. مراد تبنیه فقاها باشه مشکله. از زمان شهر توسی تا زمان علامه قطعا تبنیه شیست ترقیه. قطعیست بگیم. خوب دفعه این یعنی مواردی که فتواست بیش از این است که بایدیم احتمالا از معصوم به اینها رسیده در کتاب های ما موجود نیست این اصطلاح من قدر داره پس اگر تبنی بود هم رجال و نه مرجال باز به قبائل برگردیم این قبول میکنی و میکنی. اگر ترقی بود چرا دیگه خبا معصوم اما این در موارد اجماع ما بین شیخ مثل ابن ادریس و, ابن زهر و علامه. تا زمان علامه تلقی همه اگر باشه خب قلعا زریفه بیشتر بخشان بیشترین دستانش تبنیه طبعا بعد از علامه سال هزار هم باز تبنی بیشتر میشه حالا سال از هفت سال تا هزار هم باز تبنی بیشتر میشه هرچی عقب تبنی ها مسئله تبنی بیشتر میشه نه مسئله تلبی این شما دیگه